از کرخه تا نویسنده و کارگردان ابراهیم حاتمی کیا بازیگران هما روستا اینجور فرشته حق ورود ندارن. علیه دهپردی این <تصفح> صافتا کوری مارا به را خمون صادق صفایی داد بزدین بسم الله اسقر نقیزاده اگه حرف داری درست بشین بزن کرملایشان هم با آقا مح موسیقی مجید انتظامی مجری تر صیف الله دا هواپیمایی در حال فرود و نشستن در یکی از فرودگاه های کشور آلمان است. دو رزمندی مجروف سوار بر ویلچر، یک رزمندی نابینا با عینک دودی، به همراه چند رزمندی دیگر در حال عبور از سالن فرودگاه هستند. یک روز بارانی، رزمنده داخل ماشین در خیابانهای شهر کلن. ماشین حامل رزمنده ها در مقابل یک ساختمان ویلایی که نرده های فلزی حدودن، یک متری دو تا دور آن را گرفته توقف میکنند مردان مجروع از ماشین پیاده میشوند و به داخل ساختمان میروند در قسمت پذیرایی ساختمان مجروحان شیمیایی دیگری بر سر میزهای غذای تک نفره یا چند نفره در حال غذا خوردن هستند تلویزیونی روشن است تصویر صدام حسین و نیروهای اراقی از آن پخش می شود با زبان آلمانی در حال گفتن اخبار است رزمنده ها با کنجکاوی به تصاویر تلویزیون نگاه می آثار سوختگی ناشی از مواد شیمیایی بر صورت چند مجروع کاملا پیداست بر سر میزی سه نفر از مجروه ها نشستند یکی از آنان خطاب به مجروه نابینا میگوید: گوید دنیا چقدر کچیکه جبه کجا اینجا کجا ما آره رو بیاد میاری آقا زهید یکم بیشتر حرف بزنید هنوزم نشنختی پاتک چهارا یاد بود میاد میدونی چند وقت ندیدمت؟ آقا سعید بلند میشود و مجروح را به آغوش میکشد بی انصافتا هم کوری ما را به راخمون میکشی؟ فکر نکنم شناخته باشیم این چیزا که دیدن نمیخواد آقا نوذر پس شناختی تو خوب چی گذاشتی جاشمی سوزه نه؟ داد میزدین بسم الله زیارت قبول به اونم یاد بدید دست خالی چنگیدنو. حالا دیگه نه من اونجام نه تو جفتمون اینجاییم آقا موزر. بهتر از منور بیای پای. اگه حرف داری درست بشین بزنی. کربلایش الان با آقا محشورم نه مثل من تو چه فرقی کرد من ریه از دست دادم با تو بوتو اینا هم ما شو؟ شب شدی. سعید در محوطه بیرون ساختمان در حال قدم زدن است. آقای سعید را بله، تلفن داره. من به خانم پوش خطر. مکالمه که تماشای من تلفن میبره. بله، بفرمایید. بفرمید آقای سعید رو بله خودم هستم سعید جون سلام خالت چه دارم به جا نمیارم منم لیلا لیلا آه، آه. پس کجا حرف میزنی من از کجا پیدا کردی اینجا بیایی؟ م... نه فکر نمی کنم ولی حالا یه فرصت دیگه آره امبوس رسیدم سعید قدم زنان در حالی او... که تلفنی صحبت میکند از محوطی ساختمان وارد خیابان می شود او متوجه محیط اطرافش داشت ماشینی توقف می کند و راننده که یک خانم است. از ماشین پیاده می شود و به زبان آلمانی چیزهایی به او می گوید زن متوجه می شود که سعید نابیناست به طرفش می رود تا به او کمک کند می دستش را بگیرد سعید اجازه نمی دهد سعید به داخل ساختمان برگشته. در اتاق خود مشغول شانه کشیدن به موهایش است بفرماید. با باسم کلکون دارید اسباب زحمت شدیم چه زحمتی؟ وزیفه امونه من برمیگم بفرمایید. بله راه و گم کردی؟ همین جا؟ سعید تلفن به دست مشغول پوشیدن باران است. یک عصای مخصوص نابینایان هم در دست دارد. او شتاب زده از پله ها پایین میآند در بین را پایش نیز می عصا از دستش افتاد. سعید گوشی تلفن به دست از ساختمان وارد محوطه می شود. باران میبارد. لیلا. لیلا داخل ماشین گوشی تلفن به دست در مقابل ساختمان است تو کجایی ؟ تو منو می نه ؟ لیلا روسری به سر با یک بارانی کنار در ماشین می ایم بزار بیام پیششه هرطول میته؟ پس مستقیم بیا؟ اون ازمده رو سعید به لیلا نزدیک میشود تو دیگه خیز شدیم داری منو کجا میکشی لیلا؟ لیلا لیلا لیلا آ ما اینجا هم سعید رادیو آبه رو بردی کل ریفوز مردمه داشتی تو سیزده ساله بود من فقط قدم اتاب چرا تو چرا داداش من سیزده ساله که من این سلا رو نشتیدم بیلم نمیخواد و در سیزده سال اینطوری ببیندن اینم خاطره میشه چه خاطر این نه ساله که فراموش شدم خودت اینو خواست. ما اگه لیلاونو فراموش کردیم لیلا همه منو فراموش کرد لیلا و سعید داخل ماشین لیلا نشسته بیرون هم چنان باران می‌بارد برف پاکن های ماشین روشن است چشمات چی شده گرفته به بال فرشته ها تیر خورده تیر گفتم که فرشته بس بهت موشته میدم که از این جو فرشته ها اینجا پیداشون نمیشه تو مطمئنی؟ کاملا اینجا سرزمین منطقه سرزمین فکره، اندیشه است اینجور فرشته حق ورود ندارن پس مادر حق داشت که میگفت لیلام تنهاست از مادر بگو اون حالش چطوره؟ من سه ساله که فقط صداشو میشنم صداش پیر شده از منم حرفی میزنه؟؟ چرا نزنه؟ بعضی وقتا که بغلش میکنن نمیفهمم دوری تو که خم کرد یا چشمای من تلفن داخل ماشین لیلا زنگ میزند. او مشغول صحبت تلفنی است یا... و سعید با حلقه دستش عریس که قدر بای میر یا بپ اسکتت دنکه، دوزه اون بذار، ازدواش کردی؟ یه yes, ساله no, no. از فامیله نه، نمی اصرار همون باعث شد برای مداوا بیام قبلا دیده بودیش؟ چی رو باید می دیدم؟ خیلی دلت میخواد زنتو تو ببینی نه؟ دل خیلی چیزا میخواد. تو چی خبرش به ما رسید یه پسر داری؟ آه یا ناس. واقعاً بیست پسر لیلا در صندلی عقب ماشین دراز کشیده. لیلا ناراحت و قمگین به اش برگشته. دکمه پیغامگیر تلفنش را میزند لیلا خانم خانم رازی سلام هست. خانم آقا سعید برادرتون هستم سعادت نداشتم از نزدیک ببینم اتون. گفتم شاید بعد نباشه بدونید که آقا سعید برای معالجه ازام شده آلمان یعنی همون جای که شما هستید منظورم همون شهر کلیم اگه فرصت داشتید محبت کنید یه سری بهش بزنید در حال خوهری چیزه نیست که فراموش بشه خیلی مبنید لیلا با گریه به پیغام همسر سعید گوش می کند. شوهرش می آید تلفن را قطع می کند و در کنار لیلا می نشیند. سعید در اتاق دو تختی یک بیمارستان است. پرستاری مشغول بیماره هم اتاقی سعید است. سعید روی صندلی کنار یک پنجره باز نشسته و کاسه بلوری که در آن زیتون است روی پاهایش گذاشته و مشغول خوردن زیتون است. باد می آید سعید کمی پنجره را بیشتر باز می کند باد به صورتش می خورد رد و برق می شود سعید می ترسد و خود را به عقب می کشد کاسه از روی پای او به زمین می افتد و می شکند پرستار به تلفن جواب می دهد سعید بلند می شود کف اتاق بیمارستان را میبینیم که لکه های خون قدم به قدم برانه است سعید با پاهای ای که با خورده شیشه های کاسه زیتون زخمی شدند به سرعت از اتاق در حال بیرون آمدن است به راه را میرسد جهت مسیر را گم کرده با هر قدم او ردی از خون بر کف های راه رای بیمارستان باقی میماند در یکی از اتاقهای چند تخته، چند نفر از مجروحان، غمگین و ناراحت بر تختهایشان نشستند. یکی دو نفر از آنها در حال گریه کردن هستند. دو پرستار برانکاردی را که کسی بر روی آن است و ملافی ایلید. سفیدی را سر بر آن کشیدند، از کنار تخت خالی حرکت می‌دهند به سمت بیرون. سعید همزمان وارد اتاق می شود به کنار آنها می رسد با دست به ملافه چنگ می زند پرستار با آلمانی چیزی می گوید سعید دستش را به طرف سمت بالای برانکارد میبرد. ملافه را از روی صورت مجروح شهید شده میکشد دستش را روی صورت او میگذارد و سرش را روی سینهاش سعید همچنان با دستانش سر و صورت مجروح شهید را نوازش و لمس میکند پرستارها میروند نوزر در را میبندد یک روز کاملا آفتابی است لیلا همرا با سعید در محوطه ساختمان بیمارستان هر جور تپعی داشت شنیده بودیم جز این نوراشو دستور دکتره تو باید چند روز از این محیط دور باشی؟ من رو میگیرم هم تو رو از کار میندازم هم شوهر تو. مطمئن باش که آندراس هم خوشحال میشه تو رو ببینه بشه چیزی بهت بگم داداش به هم چهل ساعت فرصت دادن تا نگهت دارم چهل ساعت راستش تو این چهل ساعت قرار نیست فقط سعید سعیدو ببینم میخوام مادر رو ببینم مریم رو ببینم راحتت کنم میخوام وطن رو ببینم برای این چیزا چهل روزم کنه این صدای اسقره چی شد اسقر روی ویلچر نشسته یکی از پاهای او از آنو قطع شده انگار خودشه در کنارش چند نفر از مجروحان دیگه هم هستن که راجعش را کنیم همونجا با سعید کلی صحبت کنن سعید گفت نمیخواد دوره پیرم اونجا سعید جان یه دفعه دیگه از این شر برا بلغور کنی جنازه‌تو نفستم ترون حالا دیگه وقت شده گوشاتو برای این رو باز کنی ما حالا فقط دیگه 39 ساعت وقت داریم یه چیزی شده گفتید چرا جون میکنی کس تو نمیخواد بیای از شماها بعیده جایی بهتری برای این حرفات پیدا نکردین نه؟ هنوز یه ساعت هم نشده جنازه ناصر رو تحویل دادیم شرم شرمم خوب چیزیه تو از باز من چی میدونی؟ اومدی پا بگیری و برگردی؟ اما من چی؟ این بعض منه که مثل ناصره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> همون ناصر ده تا به زیر پاشه پلندگی بگیره بهتر خودت تو با اون یکی نکنیم <تصفيق> سعید نوزر را میبرد آنها داخل ماشین لیلا نشستند لیلا در حال رانندگی است. ناصر چند تا بچه داشت؟ نمی دونم فکر می کردم باش رفت و داشتی؟ خودت چی؟ چند تا بچه داری؟ بچه؟ ایچی؟ تو که خیلی وقت ازدواج کردی؟ آره... چهار سال میشه اما یه سال که مطارکه کردیم برچی؟ سود هست به همین صرفا دیگه خسته شده بود تو خسته بودی یا اون؟ چه فرقی میکنه؟ م. یکی دو سال فکر میکردم شاد خواست خدا اینه م. اما م. کم کم فهمیدم ایال از یه چیزی بحشت داره م. اما روک میگوی یه رسو قرانیم کرد بهش گفتم دلم میخود بچم بفهمه چه بلای سر پدرش اومده باید بتونه چرا جنگیدم کجا جنگیدم چطور جنگیدم چرا جنگیدم میبخشید خانم همین بغن پیاده میشه سعید از شنیدن این جمله ناراحت می شود عینکش را برمیدارد گویی به دنبال نوزر میگرده اما او فقط خطوط در و برهم و محوی را میبیند ببخشید خانمیتون کی گفت خانم با ازار منومین من به کرد که و ازم خطرناکه ممکنه که بچه مون ناقص و القلقه به دنیا بیاد راستی خانم همه یزن ها اینجور جنگ دیگه از این واجه کسیفتر دیگه چی هست سول چی گفتم سول تو جدی نمیگی تا وقتی تعریف از جنگ معلوم نباشه هر واجهی هم میتونه خوب باشه همدرد دیگه چه تعریفی بالاتر از وضع این آقا خوب چرا بهش نگفتی جنگ یعنی چی اون دنبال همدرده نه این تعریف ها موزر سرواز اجباری نبود که به زور بره جبهه آدمیه که خودش انتخاب کرده کلام داره خودش انتخاب میکنه اینجا نستی که جایی که برای بعضی از ایرانی آشناست. سفارت؟ سفارته سفارت نه اداره مهاجرت لیلا سعید را به خانه خودش میبرد برای او پلو با مرغ درست میکنند یک بشقا پر از سبزی هم میآورد. هنوز گرستت نشده شده؟ نه فیوارسته سعید جان قضا حاضره دست پخت مادر که نمیشه خیلی وقتی که از این قضاها نپختن پس شوهرت نمیاد اومده رفته سر میز نهار خوری این عادت ندارن رو زمین غذا قضا چی چیشونه داداش منم میخوام سر میز بشینم این چه کاریه اداد تو راحت باش اگر به خاطر ریسه هیچ مسئله نیست؟ این همه را اومدیم آلمان که رو زمین بشینیم و غذای ایرانی بخوریم. اونسی ای واسفییس تو ماخه ویوب بین موتور تازهگی و او خا نمی پیش. مطمئن باشم سر وقت میری بیمارستان گفتم که با دوستم از قرص همینجا میریم خوب آقا یونس با ما که حرف نزد یقیل خداحافظی کنیم یونس سر لیلا میترسد با سعید دست بده دفولت است دختی شیمر میدنم اونکل سعید بپروندن نه دایستر یوناس. آقای خانم با دوست من کاری نداشته باشم هر میلشه خدا خداحافظ سعید از ماشین پیاده می شود و آرام به راه می افتد به طرف سعید می رود لیلا و یونس نگران می شود یونس به سرعت از ماشین پیاده می شود و به طرف دائیش سعید می رود او سپر سعید می شود در مقابل سگ. صاحب سگ آن را می برد. لیلا از دور کنار در ماشین ایستاده و از اینکه یونس به کمک سعید رفت خوشحال است. لیلا در داخل ماشین با تلفن شماره ای را می گیرد. مصدوی مادرش رو میشه لفت اما لیلا نمیتواند حرف بزند هرچه تناش میکند قادر به حرف زدن نیست برد برد برد. الو الو الو رس میگه مادر از راو دوره نمیدونه که خب اگه بسایی گفت که حرف میزد اتاق عمل بیمارستان پزشکان مشغول جراحی چشمای سعید هستند چند روز بعد از عمل پزشکی مشغول معاینه چشم سعید است. پده یکی از چشمانش را باز می کند. از او سوال می آیا می ببیند؟ سعید با سر جواب منفی می دهد. نیتو آیلی. لسنسی نکنین. خیلی آروم پلکتون رو باز کنین. لیلا به همراه پسر و همسرش در آنجا هستند. پزشک چشم دیگر سعید را باز می کند سعید به آرامی پلکش را باز می کند او می تواند صورت پزشک را ببیند آرام چشمی گرداند پرستار، لینا و یونس را هم می بیند لیلا به تخت سعید نزدیک می شود عشق از گوشه چشم سعید و لیلا جاری می شود لیلا. شوهر لیلا مشغول فیلمبرداری برداری از تمام لحظات است یونس به طرف سعید می رود. سعید دست او را می گیرد یونس سرش را به سینه سعید می گذرد. شوهر لیلا به طرف سعید می رود با هم دست می دهد میگم فیلیم نیچوبای داداش دکتر میگه که نباید گریه کنی پس به مو بدوزنش دست خودم نیست شاید ضرر داشته باشه سه ساله که این چشما گریه ندیده خودی تو ببینی سه سال فقط خودمون دیدم یا مثل لیلا تو nicht zu sehen. Weißt du, mein Kind, die dunia دو Mein Bruder Ich habe auch diese Welt zweimal die Augen geöffnet. Jaber tu vatanam war in in meiner und einmal hier in Deutschland. Der fer wel yadam is Das erste Mal erinnere ich mich nicht daran, was ich gesehen habe. Amain defa ta zendan ba man. Aber diesmal werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Ich freue mich, dass Sie Ihr Sehvermögen zumindest auf einem Auge wieder erlangen haben. Dr. Mieke, ich bin froh, dass ich mich nicht mehr verletzt habe. Es ist besser, ich lasse Sie jetzt allein. Vielen Dank, Herr Doktor. Recht, dass ich Ihnen danke, Herr Doktor. Wiedersehen. Ja, ich bin froh, dass Sie... سعید در یک کابین تلفن در حال شماره گیری است عکس یک خانم در دستش است محترم. از, روح از اون برخت کسی جواب نمی دهد. او تلفن را قطع می کند و خطاب به عکس می گیرد. چطوری عروس خانو؟ اینم از دعای تو که مستجاب نشد تو باختی؟ من تو رو زدتر حالا کوتاه چرا لیلا بر تخت بیمارستان دراز کشیده و پرستاری در حال آماده کردن او برای خونگیری است آقای ایرانی که از مسئولان رسیدگی به امورات مجروحان و مترجم آنان است در اتاق است شما باید سراحتا بگی چی شده اگه مسئله پدشگی به همین راحتی بود که حرفی نداشت پس من به سراحت میگم این کار شما غیر قانونیه این حق منه بدونم این خونو برای چی میدم؟ ما فقط از شما تقاضا کردیم شما میتونید قبول نکنیم تازه همین الان چند نشده خیلی بیرحمید این خواهر نباید بدون برادرش سالمه یا نه؟ با کمک شما قطعا سالمه مگه تو این چه وقتی که باهوشین بودیم، چیزی دیدیم؟ چه چیزی؟ مثلا پرشتهایی، کم اشتهایی، خستگی زودرس نه؟ آتش زیاد حتی دلدردی چیزی نه تنی نفس چی سرفه سرفه خوش من نمیدونم حتی خونریزی مثلا موقی اسواک زدن یا تو خواب نمیفهمم سعید که تحت نظر شما بوده اصلا چرا از خودش نمیپرسید شما که این همه علایمو گفتید بس اقلا اسم درد و بگید خانم اینقدر اصرار نکنید من که پزشک نیستم همت کرد به پای تلفن گفتم تو پرونده که آقا سعید از ایران خودش آورده یک سری تذکرات قید شده که بهتره الان که تو آلمان یه چک کامل بشه همین پس خون من این وسط چیکار است فقط یه آزمایش یه اطمینان لیلا وحشت و پریشان می شود شما دعا کنید این شب جواب آزمایش مثبت شما هیچ میدونید با من چه میکنید خدا میدونه تا این حد شمرازی نبودم بدونید من وظیفه تعریف شده است مجازم همه چی رو بهتون بگن اما دلم نمی اومد نیش هادیتون رو به هم ولی من الان رو هم میفهمید خواهش میکنم خانم متاسفانم برادرتون به خاطر بازاشی می آید که منطقه جنگی دوچره لویکه می شده میدونین دونید یعنی چه یعنی سرطان خون بدن دیگه خونسازی نمی کنیم کم کم که عوارض بده خانم یادتون باش او از بالا با اندوه زیادی به سعید که کنار ماشین لیلا در حیات بیمارستان منتظر ایستاده نگاه میکنن کجا رفتی؟ یه کاری برای پیش اومد چرا رنگت پریده؟ نه چیزی نیز اینا چیه؟ هست؟ بچه هاست باید ببرم ایران ایران؟ مگه بار سفر بستی؟ بلاخره دیری یا زود باید ببندیم تو هنوز اون کشمت خوب نشده اون دیگه خوب شدنی نیست سه بار ایران عمل شد این دفتم که بار چهارمش بود دکتران میگه ازش قطع امید کردن به من گفتن تو سه هفته دیگه باید اینجا بمونی سه هفته؟ چی میگی؟ مگه من, من از خودم میگم؟ دکترت گفته میفهمم من که فرار نمی کنم یه چند روز پیشتون میمونم کلی باید کار دارم گفتن سه هفته باید کمکم کنی یه مقدار خوردریز برای فاطمه و اون تازه مهمون که نمیدونم پسر یا دختر بخرم حاشا ما باور نمی کنی باشه اگه بخوایم قیافه رو بگیری بات نمیاد روشن نمیشه. شاید فیوز پریده پس یونس آنریاز کجا؟ تا حالا سابقه نداشته شاید یه تصالی چیزی شده باشه پس آنریاز کجاست؟ حالا تو همینطور کجا داری بیری؟ نماش بس اونجا یکی را قوه یونس و آندریاس برای سعید جشن گرفته یونس به آغوش سعید میپرد شوهر لیلا مدان در حال فیلم است یونس یک لغم کیک با چنگال داخل دهان دایی سعیدش می‌گذارد. لیلا نگران به طرف سعید نگرد لیوانی آب به او میده سعید teki kekle sureti yünnes miman sogar nochmals herzlich willkommen zu hause dich wirklich wohl hier wieder richtig so Konntest du noch Fünf. alles sehen, als du blind warst? Kannst du mich jetzt noch sehen? Hm. Hm. Na ihr beiden, ihr versteht euch schon ganz gut, was? Ja. Hm. Hm. <lacht> <lacht> خبشت چیه چرا حول برد داشته فکر کردی با یه تیکه کیک خفه میشم این ناغلا داشت داییشو خفه میکرد خسته شدی نه میخوای مراسم ازدواجم رو ببینی بعدن میبینم چی درت میخواد ببینی میچی میخوای از جنگ ایران برات بذارم یه سری تصویر ضبط کردیم لیلا تو چته چیزیت شده نه مگه باید چیزیم شده باشه نکنه به خاطر برگشتنمه شاید خب چرا نمیه یه چند روزی با هم بریم ایران؟ من؟ ممکنه مادر رام نده؟ من زامنت میشم یه مراسم تو ببازاری؟ نه برای اینکه ثابت بکنی هنوزم لیلایی چندبار یه کمچین هوایی به سرم زده بود یه روز با ترس از به خونه زنگ زدم ولی از بخت من کسی گوشی رو بر نداشت که؟ یکی دو سال پیش نمیدونم گمونم اون روزا تلویزیون خیلی برنامه از ایران پخش میکرد خدایا چه روزی بود؟ آها یادم افتاد فوت الله خمینی ما اون روزا خونه نبودیم از فیلم میشد فهمید انگار همه ریخته بودن تو خیابون تو از اینجا تشریج جنازه رو دیدی اما من تو قلب تهران نتونستم ببینم چرا؟ آها تو چشمات که بود من... از اون روزه چیزی زبط کردین؟ تصویر؟ همین گردی بیل در فون خومی نیست داد افکید سشنت؟ یا باقوم میخوای ببینی؟ میشه دید Führer Irans Ayatollah Khomeini ist in der vergangenen Nacht gestorben. Der Gesundheitszustand des Revolutionsführers hatte sich in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert. Vor zwei Wochen war Khomeini am Unterleib Tausende von Persern trauerten auf den Straßen um den mich, um Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich in die Moscheen zu begeben und zu beten. Die Nachfolge für den verstorbenen ist völlig offen. Erst vor kurzem hat der Komei seinen designierten Nachfolger Ayatollah Montasseri zurückgetreten. Der amtierende Präsident Klaminei wird bei der Präsidentschaftswahl nicht یولوژی بیمارستان از ریه‌های ganz ruhig liegen bleiben. Ich sage einatmen, Atem anhalten, einatmen. Stopp. Okay? Leila Doktor va Parastari die erste Person, die diese Krankheit bekommen hat. Wir hatten schon andere die diese Krankheit bekommen haben. Ja, in seiner Akte steht drei Mal. Sei tot oder halb tot, mir ist schon die. Schon toll, Magie. Schon die oder Es ist langsam Zeit, dass Sie es geben, dass dies die Schützer sind, die Irak vor vier Jahren abgeschossen hat, und jetzt ist es hier. Meine lieber Herr, meine Patienten erwarten mich. Auch wie? Das ist mir egal. Kannst du nicht gerade mal zu ihm übergehen? باید بگم که شما عفونت ریه پیدا کردیم که انشالله هشت زودتر خوب میشه. عفونت ریه به خاطر همون تاثیرات شیمیایی چند روز باید بمونم؟ تا وقتی خوب بشی. چند روز؟ سعیدmask بر دهان گذاشته و همراه لیلا در ایستگاه اتوبوس شهری منتظرند. سوار اتوبوس شدند. مسافران با تعجب به سعید نگاه میکنند دختر بچهای به سعید زل زده سعید ماسک را از روی دهانش بر میدارد و با مهربانی به دختر زل میزند لیلا نگران میشود سعید ماسک را بر دهانش میکشد سعید در اتاق یونس مشغول خواندن نماز است. یونس دور تا دور سعید را ریل قطار اسباب بازی کشیده. لیلا گوشی به دست به سعید نزدیک می شود بالاخره تو دستم جایگاه رو بگیرم. یونس قطارش را بر روی ریل سوار می کند بله ببخشید با خانوم فاطمه عسکری کار داشتم. این با شما اتاقشو نمیدونن. <تصفح> بله، جواب هستن. کاش می‌خواستم حالا باز اونم می‌خوندام. مگر قدش کنم بعد می‌گیرم. بله. عرض کردم شما اتاقشو نمیدونن. بله. فاطمه عسکری بله الو فاطمه خودتی فاطمه؟ منم سعید خوبم الحمدلله مادر به گفت میتونی ببینی چه عجب باور کرد که ایلا وقتی مجده بچه رو دادی میگن افونت ریه پیدا کردم چه میگونم میگن از آثار شیمیاییه من که خودم میگم از آب و هوای اینجا نمیسازه تو هم که شدی مادر باور کن یه دفعه شروع شد این دکتر آلمانی گفت چیه چیه لوکا لو... 로ک... لوکم لوکم لوکمی؟ آره یه همچین چیزی به تو گفتن لوکمی <تصفيق> جز من کسی اونجا نبود اشتباه شنیدی لوکمی ربط به ریه نداره شما بفرمایید خانم دکتر. به چی ربط داره؟ بابر کن جدی میگم پسرمو من که یادته <تصفيق> خدا بیا مرزتش خب اون سرطان خون داشت بهش میگفتن لوکمی سرطان خون؟ سعید متوجه وضعیت خطرناتش می <تصفيق> نا سعید با سس با لیلا و خانواده‌اش مشغول خوردن شام هستند منشسته <تصفيق> سباتس نا واتر یلفت چرا بلند شدی؟ سیرم لابد یادت از بخت خانومت افتادی، ها؟ از اینکان چون فرشتین درست نیکی ارسن کنست یا با همین اطراف یه چرخی میزنم این وقت شب؟ بهتر سعید صبر کن شب هوا تمیزه نه، دکتر بین شب و روز فرقی نذاشته لیلا ماسک را بردهان سعید میکشد یوسانم خود هم را بیاد. نه، یوسف دخالت کرده. ازت چه گفت؟ تا چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت چه گفت؟ ازت سعید از کوچه های خلوت میگذره شوهر لیلا همچنان با فاصله پشت سر او حرکت بکنه سعید سوار اتوبوس می شود. شوهر لیلا هم از در پشتی وارد و اوتوبوس می شود. سعید حالش بدتر شده او به سختی از جا بلند می شود و دکمه ای را فشار میدهد. اتوبوس توقف میکند و درهای آن باز میشود شوهر لیلا به سرعت از در عقب پیاده میشود. اما سعید همش بد است. او نمیتواند از اتوبوس پیاده شود. بعد از چند لحظه درهای اتوبوس بسته میشود. سعید در داخل اتوبوس میماند. اتوبوس حرکت میکند. شوهر لیلا در کنار اتوبوس شروع به دویدن میکند. اما اتوبوس به سرعت دور میشود. سعید روی نیمکتی کنار رودخانه راین نشسته خدا خدا خدا چرا اینجا رو زمین دنبالت گشتم نبردی تو دریا دنبالت بودم نكشتی تو چزیراها دنبالت گشتم ولی فقط چشمابو گرفتی این تنو نبردی چرا اینجا اینجا اینجا بل چکایت دارم؟ بل پس بسکر رحمانم، بسکر رحمانم، بسکر بود که این نبود آقا چرا اینجا؟ چرا شش بابا به بست دادی؟ بست که که چی کارش مردی چه با شیشه مشروب به دست به طرف او میآید. مرد مشروبش را تا ته میخورد و شیشه را به داخل رودخانه پرت می کند. صبح شده و سعید بر روی نیمکت کنار رودخانه خوابش برده. او با صدای ناقوس کلیسا از خواب بیدار می شود کمی دورتر، چشمش به کلیسای کوچکی میافتد. کشیش و افرادی که داخل کلیسا هستند متوجه صرفهایی هایی می شوند. سعید است او وارد کلیسا شده و در گوشی کنار جایی که شمها روشن هستند نشسته کشیش و افراد داخل کلیسا به طرف او می روید. سعید سر در حال گیری کردن است <تصفيق> Morgen, Guten Morgen, Herr Guten Morgen. Wollten Sie zum Gottesdienst? Nein, wir sind im Dienst. Das sehen Sie doch. Was kann ich für Sie tun? Uns ist gemeldet worden, ein Ausländer hätte die Messe unterbrochen. Sie setzen wir hätten das gemeldet. Aber wenn Sie mit Ausländer ein Kind Gottes meinen, ja, er ist hier, um mit uns zu beten in seiner Sprache. Kommt Sie Wir stehen Maschine, Polizei. پلیس ها سعید را به اقامتگاه مجروحان شیمیایی میبرد نیلا درانجا است داداش تا حالا کجا بودی؟ <تصفيق> بازم به زحمت افتادیم <تصفيق> تخصیفی منه باید حقیقت رو بهت میگفتم خواهری کردی من جز اینم انتظاری نداشتم از غرب سعید نزدیک میشون <تصفيق> تو که هر روز رو چرخ میشینی تو هم با اون معمولیته ما رو فرسای دومال نخوتسی ها اونم خواهی طعنهایی شهر رو گز میکنی پاشو پاشو خیلی جالت بکشت یه اینجا نمیزه ویدن زی میلسیه بیتو اونتاش خواهیم یه امیزه ده اونتاش خواهیم بیتو دنگشونی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 خود که بهتر میدونی سعید و لیلا و اصغر دمه ساختمانی مهاجرت سعید میخوایی چیکار کنی؟ سب کن منم بیام شما نمیخواد بیاید ترم خدا ولش کن هر کسی حق داری روی سردوشت و خودش تصمیم بگیره مگه نه؟ برم میخوایم امینو بگم. افراد زیادی روی پله ها و نیمکت‌های راه روهای ساخت ساختمان مهاجرت نشستند سید نوزر را میبیند چرا این کار می‌کنی؟ میکنی؟ چرا این کار می‌کنی؟ خودم مربوطه از سابقت چی میخواه بنویسی؟ گفتم به کسی مربوط نیست لابد منویسی یه بسی جی که حالا برگشته، ها؟ از این یه بسیجی فراموش شده یه بسیجی مرده یه بسیجی زلیل توی که از یاد میری توی که فراموش میشی، توی که زلیل و مرده ای نه بسیجی <تصحیح> <تصحیح> چشمات نمیدید؟ ندیدید چی سر بسیجی آوردن؟ بسیجی با همین بلاها بسیجی شده اینا رو بذار به حال خودشون از خودت بگو قرارو چی بهت بدن؟ احترام احترام به چی؟ میگین من نفس میکشم، میچ میکنن. دیگه وسیجی نیستی نه؟ نیازی به توش ندارم. حداقل به قیمتش میفروختیش. تو تاجر خوبی هم نمیشی. سعید نوزر سیلی بر صورت سعید میزنم شاید دیگه ندیدم این همه اینا رو ارزم پروفت حتی سیلی رو سعید میروند نوزر به گریه میافته خبرنگار و فیلمبردار به سراغ تا <تصال> شما برای اولین بار آلمان اومدین به پس مدوای شما موفق نبوده این قصه ها چیه داری میگی؟ ما باید از اینا سوال کنیم، نه اینا امان، از این فراغ نشوی این شما چه سوالی داریم؟ این موادی شیمیایی رو wie erag dade? Behad zesh mishe Ja, das ist die Frage. Was ist ihre Meinung? Nazar shoma chiye? wissen das, Irak ist nicht nur fähig diese Produkte herzustellen. Wir haben Europa Afrika und Asien haben wie zu wissen. Und es bleibt Europa und USA übrig. که عرااک این ری دستداد شما فکر <تصفيق> میکنید که تو این جنگ از گازهای شیمیایی استفاده میکنه فکر می کنم خیال تمام مردم اروپا راحت کنید دی اروپا ب قکس اونره ن بر که منظ گرنز۱200 کیلومتر لنگ که بردش به تمام شهرای ما میرسه. مطمئن باشید عراق مشا قرارپیما نداره و هیچ دلری به اروپا نمیتونونه وارد کنه میگه شما برید سراغش بعد من سالم از شما اینه. شما برای حقوق بشر اومدید حقوق نفت و این همون عراقه که شهر خودش حلبچه رو بمبارون شیمیایی میکنه دلتی من دست خشمین بختر بشتخافن؟ آیا نباید شما سردان مجازات بشه؟ جرمش چه حد شریکش کسیه که بون نواد شیمیایی میکنه دان بشتخاف من مستیم میتشول دیگه دی این دیزی شیمیشی میترگیگیبن هابن میتاین بیدسین دانکه مجاکر. entschuldigen Sie darf ich Ihnen eine Frage stellen Was ist Ihre Meinung Was soll می سرم geschehen؟ Soll man das با عراق باید کرد؟ آیا بغداد نباید بشه ؟ این مجروع سعید است با مو ریخته و سر صورت نحیف و صورت فلاغر که شلک هایی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 او همزمان با حرکت تخت به داخل تونل و خارج شدن از آن به یاد میدان کارزار به یاد جبهه می رفتن. مقر رزمنده به شدت بمباران می شود سعید نوزر و اسخر در میان آنها هستند آنها ماسک های مخصوص بمباران شیمیایی بر سر و صورت کشیدند سعید متوجه می شود نوزر زخمی شده و ماسکش از سر و صورتش افتاده سعید به سرعت خودش را به نوزر می رساند ماسک خودش را در میآورد و آن را به سر و صورت نوزر می کشد. وقت شیمی درمانی تمام می شود. پرستارها سعید را به اتاق می و بر روی تختش می بزارند. او در این اتاق ایزوله است. لیلا ناراحت و پریشان از پشت شیشهای بیرون از اتاق خیره به سعید بر روی صندلی است. تمام موهای سر و صورت سعید ریخته صورتش زرد و بیرنگ شده دکتر به زبان آلمانی وضعیت سعید را برای لیلا توضیح می داد. لیلا <تصفيق> عشق می دکتر <ریزد. تصفيق> از غرب عیادت سعید آمده او از پشت شیشه اتاق با سعید کجا حرف تو اکبریو چرا نمی این تماشا کوف نگو این کاخ سلطنته دلم میخواد تو رکابت باشم بگی بخون، بخونم بگی بره میرخزم بگی بمیر بمیرم باید تو بتونی با اون پاها برخصی اسقر برای سعید آرفانه میرخصند اما تعادلش به بگذر از لیلا صدای گریه بچه سعید را ضبط کرد از پشت شیشه اتاق برای سعید پخش میده چند وقت دیشه نزدیک یک ماه شد با مادر حرف زدی؟ یادگار داشته باش فرودگاه کن هواپیمای ایران ایر به زمین می نشیند لیلا به فرودگاه آمده پشت شیشه اتاق سعید فاطمه همسرش با نوزادی خوابیده در بقر خیره به سعید بیستان سعید به شدت صرف می فاطمه غمگین و مبهوت چشم از سعید بر می سعید به سختی نفس میکشد دوباره صحنههای های جبه در مقابل چشمانش ظاهر می داخل هواپیما لیلا با روسری مشکی نشسته فاطمه همسر سعید چادر به سر با نوزادی در بغل در صندلی کناری اوست بر صندلی دیگر یونس است که پلاک سعید در دستش است همسر لیلا هم کنار اسقر در ردیف جلو نشسته خب عزیزان این برنامه با صدا برداری همکار محترم آقای علی حاجی نوروزی، تحییه کنندگی همکار گرامی آقای فرشاد آزرنیا و اجرای من شمسی صادقی به شما عزیزان تقدیم شد خدا نگه دار.